زنیار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت بی بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی انایت رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در ظلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خرد و می پسندی جانا روانه باشد خون ریز را امایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه برون آگه کوک به هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان و این راه بین آیت ای آفتاب خوبان میجوشدن درونم یک ساعتم بگن جان در سایه ای انایت این راه را نهایت صورت کجا توان بست که سب هزار منزل بیش است در بدایت هرچند بردی آبم روی از درت نت جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت عشق فرست به فریادر خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی در چارده روایت